برلین غربی آلمان غربی ده جوان 1962 سوبانم رو تمام کردم و یک آخر هفته یک دیگر را شروع کردم از وقتی هیلدا خانه را ترک کرده بود یک شنبه ها خیلی یک نواخت شده بود مو راه ارتباطی با هم نداشتیم فقط با یک نامه کوتاه باخبر شدم که خاله شده ام خاله کودکی که خیلی شبیه من است و نامش را گریتا گذاشتند هیلدون نامش رو خیلی طولانی نکرد و با اینکه توضیح زیادی نداد اما نام بوی سختی و محدودیت میداد. فقط گفت که او و سب ازدواج کردند و اینکه مجبور شده دوباره از همان نام خانوادگی اصلیمان، مون اشمیت استفاده کند چون در گواهی تولدش که آن را در بایگانی های دولت در شهر پیدا کردن این اسم ذکر شده بود و در آنجا استفاده از نام غربی را را پذیرفتند. با بیمیلی تمام پیگیر نوشته های روزنامه ها بودم و هر خبری مبنی بر صدور مجوز برای ساکنان غرب جهت رفتن به برلین شرقی را مطالعه می کردم. بعد از اینکه کارهای نظافت خانه تمام شد روزنامه هفتگی گیه را برداشتم و شروع به ورق زدن آن کردم. قصاب اروپا این عنوان یکی از مقاله های شماره اصلی بود که قهرمانش کسی نبود جز، آدولف آیشمن آیا شما آدولف آیشمن پسر آدولف کار آشمن هستید این اولین سوالی بود که رئیس دادگاه از آشمن پرسید که در واقع لحظه شروع دادگاه در بیت هاییم یا بیت و شب در قدس غربی بود مردی که در گوشهی پشت شیشه ضد گلوله نشسته بود جواب داد بله من آدولف آیشمن هستم دادستان دادستان کل شروع به قرائت لیست اتهامات کرد. طی سالهای 1939 تا 1945 متهم به همراه دوستان و همراهانش مرتکب جنایت‌های بر ضد یهود شدند که منجر به کشته شدن ها یهودی شد. این جنایت در خلال طرح نازی ها جهت نابودی یهود انجام شد، طرحی به عنوان راه حل نهایی برای مسئله یهودیان. اشمن پلت نمیزد. و از گوش... طریق گوشی ترجمه آلمانی سخنان دادستان را میشنید جلسه دادگاه که به قرائت دعاوی اختصاص داشت حدود یک ساعت بهطول انجامید که شامل پانزده مورد اتهام میشد متهم تعداد بیشماری از قربانیان یهود را جمعآوری کرده و آنها را به مناطق مشخصی که برای اقامتشان در نظر گرفته شده بود منتقل نمود و در آنجا محصور کرد تعداد زیادی از آنها را نیز به اردوگاه, اردوگاه های نظامی نازی ها فرستاد همچنین به طور مستقیم یا با همکاری همدستانش اقدام به کشتار دست جمعی یهودیان در اردوگاه های نظامی آیشویتس، داخاو، مایدانک، لوبلین، راونس بروت، هازن و دیگر پایگاه های نظامی نمود به یهودیان را در اردوگاه های کار اجباری به بردگی گرفت و آنها را از حقوق انسانیشان محروم کرد و به این ترتیب آنها را شکنجه کرده و باعث رنج و عذابشان شد. سیمن این که او و کسانی که با وی همدست بودند به ناحق بر دارایی و ثروتهای این یهودیان دست درازی کردند و اموال و های آنها را ضبط نمودند. این جنایات از طریق دولت‌های اروپایی و با همکاری اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای حوزه دریای بالتیک از جمله لیتوانی و استونی انجام پذیرفت. و تمامی این اقدامات و هدف نوبودی قوم یهود انجام میشد. بعد از اینکه دادستان قرائت لیست اتهامات را به پایان برد، خازیه از آیشمان پرسید: در مورد اتهامات وارده حرفی داری؟ من مرتکب هیچ کدام از این اقدامات نشدم و تمامی این اتهامات را رد می‌کنم. نویسنده مقاله چون این شروع حیجان انگیز و نمایش ای را برای مقدمه یک گزارش خود از دادگاه رئیس سابق من انتخاب کرده بود. هدف اسرائیل و در رأس آن بنگوریون آنگونه که ادعا می کردن، نشان دادن جنایت نازی بر ضد یهودیان بود و تصمیم گرفتند که این امر را با محاکمه یک مرد تنها و میدفاع انجام دهند. میخواستند دوباره موضوع را به صدر خبرها بیاورند و در سطح عمومی مطرح کنند. زیرا کشور آلمان به رهبری آدناور، تلاش میکرد آن را در لابلای اخبار دفن کند، اما بسیاری نیز با اسرائیل و رسانه هایش همکاری، همراهی میکردند. از جمله امثال همین نویسنده روزنامه دیرش بیگل. در مدت دو ماه تمام دنیا پیگیر این محاکمه بودند که ادعا میکرد جنایتی وحشیانه و غیر انسانی علیه بشریت را برملا میسازد. اسرائیلی ها چون به متهمین دیگری دست نیافتند، تمام اتهامات نازی ها را به تنها فردی که دستگیر کرده بودند نسبت می دادن. با این موج خبری، حکومت نازی و جنایات آن دوباره بر سر زبان افتاد و همه شروع به تورق دوباره تاریخ آلمان کردند. کشوری که تازه موفق شده بود گذشتش را تا حدی پشت سر بگذارد با این تصور که پرونده زشت و آلوده از تاریخ محاصر خود را برای همیشه وسته است. آشمند در طول محاکمه آرامش خود را حفظ کرد وی روی یک صندلی پشت قفصی شیشه ای نشسته بود ارتدا صندلیاش را مرتب و سپس با دقت برگاه های مقابلش را یک دست ردیف کرد گویی میخواست برای یک روز کاری جدید آماده شود من دقیقا به یاد میآوردم که چقدر به نظم دفتر کارش اهمیت میداد نگاهش دائما به دادستان بود که درست روبروی او نشسته بود در چهرش هیچ عکس نسبت به آنچه دربارش میگفتند دیده نمیشد با وجود اینکه اتهامات زیادی را با اسناد و مدارک زیاد علیه او مطرح می کردن و شاهدانی آورده بودند تا از سختی هایشان در پایگاه های نظامی نازی سخن بگویند و برخی از آنها ضمن صحبت حالشان بد میشد وقتی فرصتی به او شد تا به اتهامات خود پاسخ دهد با آرامش کامل برخاست با اطمینان و بدون لکنت و توپخ زدن شروع به صحبت کرد به طوری که این اعتماد به نفس و آرامش او حزار را عصبانی کرد. اگر از نظر احساس گناه یا عصب به وجدان بخواهم حرف بزنم این سوالی است که باید با دقت و جدیت از خودم بپرسم چون در این وضعیت باید خود را قضاوت و محاکمه کنم. از این منظر باید اعتراف کنم که من در این مسائل نقش داشتم. اما نقش من فقط اجرای دستورات رهبرانم بود. اما از نظر حقوقی و با نگاه به عواقب آن من جز اجرای این دستورات انتخاب دیگری نداشتم. درست است که من کار انتقال یهودیان را انجام دادم و این جا جایی باعث نابودی آنها شد. اما اخراج آنها کاری کاملا قانونی بود. از نظر من این موضوع قابل پیگیری است تا وقتی که به این سوال پاسخ داده شود که <تصفح> در نهایت چه کسی را باید مسئول دانست. سخنانی که این مقاله به عنوان پاسخهای آیشمن آورد برای من تازیگی نداشت. چون تا جایی که من او را می شناختم مردی بسیار محکم و قوی بود و با آسانی تسلیم نمیشد. مطمئن بودم او به شدت تحت فشار بود. البته قرار گرفتن در چنین دادگاه یک طرفه ای آن هم به تنهایی او را نمی هرچند هر کاملا واضح بود امکان اجرای ادالت در آن دادگاه بسیار دور از ذهن است. این همان مردی بود که من سالها در کنارش خدمت کردم با افتخار با او کار کردم. از او بسیار آموختم و بیشونوش را دستوراتش را اجرا کردم. روز پانزده دسامبر 1981 قاضی به آیشمند دستور داد بیستد. سپس روبه اوش روبه صحبت کرد و از روی برگه هایی که در مقابلش بود اینگونه خواند: هر قطار هزار نفر را جابجا به میکرد. متهم دستور انتقال این افراد به اردوگاه آیش یا هر پایگاه نظامی دیگر را صادر کرده است. با توجه به این موضوع متهم به صورت مستقیم در هزار قتل عام مشارکت داشته است حتی اگر آنطور که متهم ادعا میکند او کورکورانه از دستورات اطاعت کرده است ما میدانیم او طی سالهای متوالی در چنین جنایاتی همکاری داشته و به همین دلیل باید مطابق قانون به اشد مجازات محکوم شود البته ما دریافتیم که متهم کار، کارهایش رو با رضایت تمام و بدون اجبار و با هماهنگی مقامات و دستورات آنها انجام داده است. در حالی که در اینجا میخواهد اینطور وانمود کند که فقط مجری آنها بوده است. و اساس آنچه ذکر شده دادگاه آدلفقاایشمن را به اعدام با طناع دار محکوم می کند. وقتی عبارات مربوط به حکم او را می خواندم به شدت غمگین شدم. ناراحتی من فقط به خاطر این نبود که او را اعدام می کردن. من هم مثل تمام آلمانی ها که در زمان وقوع آن، از این خبر اطلاع داشتن، این موضوع رو می دانستم. من اون موقع از دوری مردی نراحت شدم که به عنوان یکی از کارمندان ساده او کارهای دفترش را افتدار بودم. اما آنچه از, از این سرنوشت او باعث نگرانی من می این بود که من هرچند صحوان در جرایم او شریک بودم. گاهی به این فکر می کردم که ممکن است او در بازجوی هایش از من هم نام ببرد. اما خیلی زود این فکر را از ذهنم بیرون ا چون من فقط منشی او بودم که کارهایی مثل مرتب کردن پرونده ها و قرار دادنشان در قفص تنظیم زمان قرار ملاقات هایش و کارهای از این دست را به من محول میکرد. دوباره به روزنامه نگاه کردم تا بخش آخر گزارش را بخوانم. نویسنده گویی میخواست توانایی خود در نمایش نام نویسی را نشان دهد. به همین دلیل این بخش را مثل یک صحنه نمایش مفصل نوشته بود. ده روز قبل مامور زندان رمله اسرائیل حدود ساعت 7 غروب وارد سلول آیشمن شد و خیلی کوتاه به او اطلاع داد که درخواست افش از طرف نخست وزیر اسرائیل مورد پذیرش واقع نشده است. همان که قبلا تقاضای او مبنی بر تجدید نظر در حکم نیز رد شده بود. مامور قبل از اینکه از زندان خارج شود نگاهی از سر انزجار به او انداخت و گفت: حکم نیمهشب شب اجرا می‌شود. آیشمن درخواست شراب کرد. نصف بطری را نوشید. ده سیگار نیز با آن دود کرد و آخرین نامه‌اش را برای همسر و فرزندانش نوشت. بعد از جا برخاست. ریشش را تراشید. مسواک سپس شلواری به رنگ قهوهی و یک پیراهن سفید پوشید. نیم ساعت قبل از زمان اعدام یک کشیش به نزد،, نزد او آمد. کشیش از دیدن آرامش آیشمن سخت متعجب شد. آیشمان قبل از او شروع به صحبت کرد. تو چرا ناراحتی؟ من که اصلا ناراحت نیستم. در قلبم احساس آرامش می کنم. خودم هم البته از این آرامشم متعجبم. مرگ چیزی جز آزادی روح نیست. <تصفح> وقتی صدای پای نگهبانان را شنید که به آن سو می آمدند شد و ایستاد. من آماده هم. به آرامی پشت سر سربازها ها می رفت. حدود پنجه قدم یا کمی بیشتر قدم زنان رفتند تا به اتاقی رسیدند که برای او آماده شده بود. تنابی درست وسط اتاق بالای یک میز چوبی گرد آویزان بود سربازها او را بالای میز بردند و وادارش کردند روی آن بایستد بعد پاهایش را با لیسمان بستند دستانش را هم از پشت بستند بعد هم پارچه سفید آوردند و سعی کردند روی سرش بگذارند اما آیشمن آن را پس زد آیشمن یک لحظه ایتان وزیر جنگ اسرائیل را بین حاضران دید و او را شناخت نگاه حفظش رو به او دوخت و گفت امیدوارم نفر بعدی تو باشی همین که تناب دار رو دور گردنش انداختن فریاد زد زنده باد آلمان زنده باد آرژانتین زنده باد اتریش وظیفه من بود که موتی قوانین جنگی کشورم و پرچم میهنم باشم من اومادم سپس با آرامی و رو به کسانی که اطرافش ایستاده بودند گفت به زودی دوباره همدیگر را خواهیم دید آقایان من در تمام زندگیم به خدا ایمان داشتم و اکنون که از این دنیا میروم نیست، مومن به همان خدایم هم هستم. آن روز برای فرماندهم گریه کردم، مردی که از نزدیک میشناختم، برای شجاعتش گریه کردم، برای عشقی که به وطنش آلمان داشت گریه کردم، برای اینکه در آرزوی عظمت وطنش با چنین سرنوشتی روبرو شد گریه کردم. آنچه مرا غمگیر میکرد احساس عامه مردم کشورم نبود، آیشمند و ماجرای او وجدان مردم، و نوعی احساس گناه در آنها شد گناهی که پدرانشان مرتکب شده بودند تا وقتی رسانه‌های عاشق تحریک و تهیج مردم وجود دارند این احساس گناه و جریحه‌دار شدن احساسات مردم در دنیا هم ادامه خواهد داشت